رسول الله و آهد غیبین ظاهرین المرسونین و مرسود دارم شهر دارد مجمعی اللهم زمین مشترین مرحم و رحمت که و رحمت رحمت رحمت زد مرحس خودجی خبرگات ما یه مرزاقی از و صحابه گفتیم رو شروع بکنیم تا ریشه های در مرد رو خوشن بشیم در مرد من به در یه راقی هست که سابقی ها بیشتر بگردن را حسین هم بودن و تو مردم هم از راه بررسیه و چهار سادی داره محلول اون که اون در دنیاه از به این در دنیای ما قلون دنیاه قلیمه اینا میشه دنبال بررسیه ایلک در مطابقه مثلا در جامعه ما متعاره به کسی ما به سر من اما در دنیا ارمان جدید میشه ها سرماخوردی رو پیدا می که این در کجا بیدار شده آمدش مثلا یک شور معینیست یا ویروس معینیست اون وقت مدارده را از را آمد شروع می کنند به در مثلا شما یک کاری کن سرماخوردی از روی بگره میشه ها رو سر می کنند از اینکه در درمین هم بود نمیم بگم بگم بگم بگم بگم بگم بگم اما روی خیلی دقیقی در را سر می کنند با همینجور بشه ارت بجرد رو برمید در نواقص اونون اعتباری یا همومه اعتباری شما قاعده ها نقیقیت محبوضیت نیستن ما ها معتقدیم این کار رو باید در اونون اعتباری انجام داد و اگر تردید اعتباریت نکنیم در افرد این رویشه ها رو بشنسید. مثلا من ما مثال در باب تعارض می اگر تا واقع شد این مارجه ها برسوسه مثلا چهار قرصه آمده ما باید تقریب این خائزه این مارجه ها اعمل در لربه واسه ما مطلح کردیم به جای جنگ دوبار ترجیم گفتیم دبیم بگردیم ریشه های تا چیه چرا شده دنبال ترجیم ده اون مطلحه معلومه. اون مطلحه شاخوبره به دنبال شاخ و برگ رسته به جای شاخ و به دنبال ریشه های قصد یستیم به ریشه هایی حالا تربیر به نیجرد کنیم آن اینجا آلانده ها تغییر ریشه ها بکنیم فسیم منشه تارز و تبر در این مورد یک چیزه در مورد یک چیز دیگریه مثلا ما با معرفت سبب و با معرفت ریشه ها و دنبال حضمون قسمت واقع بشیم نگه مسئله تعارض رو با تعبض حل بکنیم و بگیم بگیم آمد سندرستان خباید مشروع تر این بکنیم این رو باید بازاره بازار کتابی نقبول بکنیم مخالف آمد الاخر ترسیل ها در اینجا زفت شد. زفت ما در مسائل قدوم اعتباری هم صفحه کبسو میشه خدار علت وارد شد قرار تجربه به در مورد اخباری میشه ادراه میشه ما متوجه می‌بریم که مسئله کوچیه که خبر روشن میشه و چرا مثلا این مبانی با ارا و اعتبار و پیدا شد که ریشه های یه بحثو پیدا اون ریشه اصلی که وارد کار شد و این بحثی و تکوواتی پیدا چرا چیزی به ما رسید چگونه به ما رسید. و در الاجه هایی رو که مفرق شده اون رو مفرق کنیم و خود خود معلوم میشه که مثلا بردردین الاجه ها اینا حصولا کارساز نیستن و شارساز نیستن از که این اساس ما اتزاقا متردز زمان رسول الله شدیم مجموعی اموری که در زمان رسول الله ما می‌بینیم یک حالا قیلت آیه نو و قیلت آیه تفکار فرمین. این دعایی مبارکه یک مجموعی از روایات هست که پیغمبر مسئله تبلیغ صحبت کردن و مسئله حدیث و نفت در را که عرباین حدیث هست و ما شابه که مقدارش دیروز گفتیم که در محاملی سیاد حادیث به مزمون های مختلف یه مقدارشان درباره در کسانی که راوی سنن رسول الله هست الله و مرخم خلقایی یه هم دنبال این دسته هستن و از موارد مختلف و تعابیر مختلف نکسی دومی که در زمان رسول الله قابل ملاحظه هست افراد بودن که پیغمه اکنم به جاهای مختلف میفرست بودند پس اون به برنی فرست داد و به خود مدینه بردادی میتشیدیان فرست می برای بیان احکام می آمودن بخنی ها رسول الله یکی سی رو بفرسید یاد بخن خب طبیعا این شخص می اونجا می گفت اسلام اینه, اینه. این منشع شد که فیماون و لبای اسلام تمسح کردن و همین سیره به در مسئله بودیت خبر حالا چی دوریش اون نقطه تنیخ در درد این تا نقطه که در زمان رسول الله قابل لحاظ است و قابل برمسید نقطه در سال ششم هجرت اولا در سال ششم هجرت که پیغمبر برای عمره خاصه تشریف و ماشه دیمانه و منتحی شد به صلحه مدهی سال ششم و بنا شد که اون سال رو پیغمبر عمره تشریف نبره سال دیگه که سال حبسشون بود و مرغ شد در سالیت و اون رو حذف می‌کنند سال سال ششون سال حبسشون بعد این که بیه بیه بیه از اینکه سال دیه شد و حالا تا خودربیش شد و حالا که مکه مشغول میشه. نه در میان مکه به سر بجند. این این شومیزی خودربیه. خودربیه مرغ و شومیزی که الان شیل نمیخواد آسالی هست من رفت و ماهن شدید من شنده نران این عدن حدود که ابراهیم سلام الله مواکیت اونهایست حدود حضرت ابراهیم یا خوده بی همه که به ما کام قیم برگدم وقتی جنگ برداشته شد حالات نزا و ما بین شکیم و ما بهیمو برداشته شد و به تحبیه قرآن نافتح نارک فتح مبینه چون این فتح در حسی صورت و است. فتح مبینه است. این صورت که شد به اصطلاح فتح مبین به تحبیه این منشه شد که از حتی اشعار یمن که یک مدار زیادی از اشعار مختلف بیان به مدینه به اظهار اسلام بکنن از بایده امون به اسلام میوردن اما خب، بیشترشون چند تا وقتی اسلام میوردن اصطباقا اونها رو وقتی بکنن یا به اصطباق ما قاسی وروه های اعظامی از مناطق مختلف از این مختلف از جاهای مختلف وفرود به مدینه آمد. این سال ختم هجرت رو در اصطلاح آمول وفرود میگن این به خاطر چون صلح شد برمان شد جنب برداشته میشه. دیگه اشاره دیو ندرید نمی کرد در رابطه احتمالی که مثلا مورد حمله قرش داره بگن چون صلح با قرش با اون دشمان ها رسمی اسلام لگا آمده. این که اینها آدم در آمور بکن یه مقداری از به اصطلاح احکام و سنن رو اغلبره اکتران در سون رو دیدن به این افراد بدیستن ببرن اونچا یه مقدار زیادی از مسائلی که مربوط به مالیات و مالیات نه مالیاتی که ما میگنیم امور مالی را به امور مالی راجب به امور اقتصادی را به اقتصادی به اصطلاح تقریبا کلام راجع به احود راجع به قراردادها یه مقداری از در این زمان نروشه شد خیلی هم برای کرد می نروشن مثلا فلان وقت می مثلا موطن آیه خلاصه از احکام اسلام در ما بمیدیسیم از از می فهمونم این خیلی دارم شان علیه نبیتاله نروشن و کتر باقا علیه نبیتاله خیلی دارم برای یمن بود می دادم به یمنی ها و خیلی از احکام تو اینا و باید اون احکام یه مقرد باشم بردها محل کلام شد که اگر این ای احکام دایمی یا احکام موقع که مثلا یکی از احکامی که در چند تا از این نامه ها نرشه شده ان لا تا شروع ولا تا که ما پیغبر من ها پر قول که نه هشری باشه نه آشری باشه حالا به سری بسیاره ما به افعال الله اون درست دیگه هست هشت رو از کردم در اسطلاح عربی 8 در اون زمان به معنی سربازگیری یعنی اگر جنگ شد نیم شما سربازگیری کنیم هر کسی خودش جهاده فیسته بیداره خوشه بیاد هشت یعنی این رو ما نداریم تو ربایت ما نهامادیم احتمالا اشاره بیدیم باشی که حکم موقع بوده نه حکم دانمی این حکم حکم موقع. سربازگیری اجبالی نباشه از لا توب شروع با ها و شین های حتی و شین و ها به ادل و گوشو خود شد اونجا به همین معنی شده جمع باخده این رو اصطلاحا در اصطلاح قدر اون زمان هشت و رو به معنی سربازی ایشواری لا توب شروع و لا توب شروع که اشدیه ایده هم چون مانیات مخوابت به عرب جاهلی قبل از از اون در درسته بود از ذاکونوا تجارت اینا 10 درصد میگرفتن. پیغما در این سال این دو تا مکرر رو برداشت. یکی گرفتن ده درصد که از مالیات بود، یکی هم سرقتی. اما خب بعد می‌دیم بعدش جنگای پیش می‌اومد، میادن میگرفتن. اینا رو خب موقت ساده به سال بسند. از زمان عمر هم اوج دولت برگشت. ما در بحث مالیات اسلام متعرض شدیم، فقط در تجارت خارجی سرکه در تجار میخوااص ارائق گذارید اونجا که ساعی بودن که ازنه یک دهم ده می گرفتند ده هم نسبت یک دهم ها می گرفتن. چرا از سر در زندگی برشن بوده چون خیلی محاسباتی میخواستم بکنن اون ار انگشت های دست بود. یا روی دست دستبا یک پنج رو که ف سود یا روی دو در حساب می کردنن یک ده، یک, ده یک انگشت از ده انگشت یا یک انگش از پنج انگشت سر این دو تا مالیات خیلی مشهور در تاریخ، قبل از اسلام و بعد از اسلام برای آسانی محاسبه شده از مجموع انگشت‌های دست یکی یا از هر دستی یکی اگر از هر دستی یکی بشه میشه خونس از مجموع یکی بشه میشه خونس این نسبت خوش و خونس نسبت خوش رو, خوش رو در سالی که مالیازات ما از این تاریخ تماظر نهید دارم تن بخونی از دی از تماظرناهای قدیم هم اینه خوش رو خونس داشتن این سه بوده. یا مثلا قشت نصف میکنن یک بیستوم میشن حالا اون است که من نمیخوام اون بحث بشن یا حتی کچیتر میکنن یک چهدوم که من کردم در مالیات متعارف اسلامی که زکات باشه بیشتری رقموی یک چهدومه یعنی از قشت هم کرتن. یک نصفش به اصطلاح بعضیاش هاش نصف میگرفتن یک بیستم که در زکات قلاته بعد در ذکرات، یعنی خب خمس بزنه، بقل عربا، 5 درصد خنگ درصد میشه یک بیستان در ذکرات دو درصد، متعارف دو درصد از آن در ذکراتی که در شوید اسلامی به اسم همون نصاب دو درصد یعنی یک چهران، متعارف بشون ماده اینه خوش خمس یعنی یک پنجان، یک دهان یک بیستم یک هزار. نزاعای مالی را دارستم اینطوره. حالا من نمیخوام از باتیم مالیاتی مالی یه نسبتی داره یعنی خیال نه تنها انجام نه یه نسبت معینی داره. از یک پنجم شروع میشه؟ یک یک نه یک بیست. نه بیست هزار. شما بیست درس دارید؟ شما تو بیست به درصد پنج درصد؟ از این درصد بخوایم بگیم؟ دوونی درصد میشه یک شهرو، چند درصد یک دیسیم، ده درصد یک دهم و 20 درصد خمس ده درصد میشه خوش، 20 درصد میشه خمص. یه دیس 20 درصد دو در اسلام کلیه مادیات هاش، زکاتش بر این اساسه، و خمسش در اسلام. یه دو سه مورد استثنایی داره کاربرانی که مورد بحث اون بشم، به استثنایی که دو مورد این نظام کلی مالیاتی اینطوره کلی مالیاتی درصد هم داریم 20 درصد که نظام متارفه یک یک تا 8.5 دو تا نادرند متارفش 20 درصد درصد 10 درصد نظام مالیاتی که ما الان در ایران داریم این طوریه توش استثنان داره که نیمونم پس اون نظام دهدرکتر که عش بود این در قبل از اسلام بود خود رسول الله اینه برداشتن دو مرتبه عش توسط عمر برگرد با که چون عش رو در بین کشورها به اسطلاح خودشون بین مناطق میگرفتن اسطلاح روزی ها گمرو که گرفتن وانان گمرو یا شواش گمرک شد گمرکی شد اشعار این که لفظ اشعار رو به گمرکی به کار دارن ولی این بود این زمان عمر در تجارت خارجی نه در داخلی از شهرها نمیگرفت اگر فرض از حجاز موردن عراق در مرز حجاز و کسی بود تمام یاردوش شده احساب بود ببینن از این تنها رد میشدن ولیزه در بعدگه اغراق چه اهل سنت داره که مثلا کلا همین یکون از اصحاب اهل این اصحاب لعلهم مراد همین گمروکیه مسئول گمروکه این اصطلاحاتی است کاری به زمان اول میشه من نمیخواستان وارد این برس میشه این آمول مفود که میاد یه مقدار از سنن رو پیغنبر میگریسن پس نقطه اول یک مقدار احادیثی بود که اربار در بود نکته دوم، افرادی بودن که پیغنبر میفرست دادم روشن شد نقطه یه عبارت از مجموعی نوشتارهایی بود که پیغمدر مخصوصاً در حامور و حسود که این نوشتارها بعدها خود اینها باز به خبر نهر شد این نوشتارها الان ادعا شده بعضیش موجوده خواب کردند که کتر آقا علیه ابن عالی ادعا کردن بعضی نوشتارها الان موجوده این نام این نامه ها از اون نامه های است که مثلا پیغمبر به خود پردیز نوشتند برای اسلام و, و بوزن بود این توش بود سنن مالی بود سنن اداری بود که دهی از این نوشتان ها مسئله بسیار مهمی که الان در اقتصاد خیلی ریشه داره که دهی از این به اصطلاح اقتصاد اقتصاد مثل می کنیم بود. <تصح> مسئله بخشیدن عراضی بزرگ بود به افراد در اصطلاح عربی بود اقتطاق می گفتن اقتطاق و عرضن به فلان، که اقتطاق بود اون اصطلاحش مثلا یک کسی از بزرگان عشقیه فلسون در یمن میاد، گویا مثلا ما در اینجا کویی داریم پایی کویی تپیز مثلا پاییی کوه مثلا یه دشتیست این دشت اصطلاح ما مثلا پنج هزار مکتاره دو هزار این تویچ مثلا مرزن نمک هست و فلا جای و زراعت شما اه. رو به من بگید حیفن بر اکم زمین های بزرگ رو به اطراب دادن این رو اصطلاح هم داشت در برایت عربی احطاق بگید این احطاق زمان عمر هم بود امیرون بود احطاقات رو نبی اگر چند مراد اینه یه از این احطاقات همین زمانه الان در موقع عرب، الان فعلا، وقتی ما نظام فئودالیست در اصطلاح غربی یا شما به فارسی ترجمه ارباب رجایی، ما میگیم نظام ارباب رجایی نظام ارباب نظام اقتصادی معین و اون که ارباب یا سئودا یه مناصب بزرگی مثلا تو اروپا، مناصب یا تو آمریکا، مناصب بزرگ زمینهای بزرگی رو البته اصلش در اروپا به این صورت بود تو آمریکا شکلی دیگری داشت ولی نمیخوام وارد خیلی بزرگی رو در اختیار داشت و در اونجا ها بایدتا کار باید کشاورد داشت پنداخ داشت این لفظه کشاورز کسی که رو زمین کار بکنه و همه زمین باشه در لغت قربی سر بکشون گفتن در لغت عربی ایش این افلاحات رقوم در لغت فارسی رعیت اسم شد مثلا بود افرادی که 20 تا 30 فعلا هم که بعضی کشار ها مثل هند و پاکستان دارن هروا 20 تا در کل تا, تا د وقت دل رو که میفروض اون کشاورز هم پنوارده جا به جا میشد اون کشاورز عبد نبود اما مرتبط به زمین بود این اصطلاح هم در نظام استثادی خودش خودشی مرحله صالح استثادی و از اونه خاصی نظام استثادی خاصی است استلاح هم بشینیم فعضالی که ما در فارسی ترجمه کردیم نظام ارباب رعیتی عرب ها رو ترجمه کردن نظام اقتاری با این کلمه افتا بود رسول الله رو شد شد اونجا داشت افتاقات رو این آمد که اصطلاح اقتصادی از نمام اقتصالی نظام اقتصادی. نظام این منشاء شد که ازدهی تصور بکنن که مثلا اسلام حالا مثلا, مثلا کمونیست ها که میگن مرحل تاریخی معین دارید مرحله گذر از این مرحله اقتصادی و عمله اقتصالی بود یعنی مرحله وقتی آن از تفسیر اسلام رو بکنم محصال چون بیدم پیهن بر اردم اختاقات داشتن از دیگه هم از این آن ما اسمی برام آن مراجعه کنم سعی کردن این اختاقه از اون اختاقه توضیح هسته که توضیح هسته نیست. الان به هر حال من وقتی شده اشار برسری طولانیه من فقط مخاطر افاقات بکنم که خیلی مسائلی که بعد اگه دقت بکنیم مسائل کلامیه مسائل نیست. مسائل بسیار کلانیه این مسائل کلام هم در این سال ختمه و تدوین شد. و دیگر عمل مفهوم بعض مثلا این چهار تا مطلب رو مطلب چهارم بعد از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه یحو شواش از اصحاب مصالح رو نقل کردن حالا این صحابه مختلف میزن بعضی که مثلا ابوبکر مثلا گفت که پیغمبر اینطور الا لا به درک این لام ماء انبیا رو که الان ما شیعه ها نسبت میمنده سنت ذات معربین ها این متن درست نیست خود به نسبت میه ما همش اینو نگفتین خنجری تو لا این لام لام مودع این ذات ماء شده و من یه وقت دادم که این ماء مشکل انیا مشکلی تاریخی داره اونا با ولی مشکل مواجهه شده همین ذرافت کرد من با دهری یوا شماش این مطلب آمد و اصلا ه دروا هملا ن بم بر شما ما نشسهنا شمارییس. پیش های کلور خبر وا دقت ب خوبیم میگ در روز صحیفه او بر به انصال امادن گفتن نه نه امیر نمیکن امیر یا بوشتن. ما بار امیر بشیم ما کمک کردیم ما ستان رو بالا بردیم شما مااجین که مکانوادی مشالم های رسسلال سول بودیم بودی بودیم بودی بر خودیم ما تمام کار رو ما کردیم پس این خلافت و رایت و حکومت هم با دست ما باشه دست شما معنی داره باشه میگن ابو این حدیثی که قال رسوله علی ایمه تو من پس شما انصار هر ندارین ایمه بشین امام بشین و قبول کردن یعنی از ابو قبول کرده اینا مثل بقیه دروغ هاشون همه همینجوری تو دروغ هست خب اون سعردن اوازه که تا آخره قبول نکرد و ممکن بشه الان چ پس بعد از شی بعدبللا حساب میکنید این جلو عمر اوم چیز چیزی حرف فلان. تا جایی که حتی خود لستان نهینی شدن در ما باشه این اینارره لییسندی براتون بکنه ونن که مثلا عمر که سر سوال کرد یک مطلبیکن یه عرب و عالی ببل گفت یا می آنا مدینه پیش به مثلا مثل پس پی بر این ج گفت ببینیم اوم رو خیلی برگردهح که این کت پس یه دستی مطرف شد بعد صحابه این چاران صحابه و حتی افراد این طوری افراد عادی نه این حالا مثلا چند میده اینها باشن این گفتن په همبریز رو فهم و بعضی هاش هم مناقشه شد مثل قصه عبوبه مثل موزمش قبول شد این هم مثلا چند هم شد چهاران شد مطلب پنجام که پیش آمد بحثی پیش آمد که الان که اینطوره این طوره ما بیاییم سنن پیغنبر رو بنیمیسیم خیلی اینکه بعد موسمون های اشتلاح چون یه بحث اساسی این بود که ما تراعض داریم و سنن کالیه هم الان عرض میکنن این سنن رو تدریم بکنیم تازاریه نشه برد زیاد نرسه محبوبی که عمر گفت نه صلاح نیست حالی زیاد عمر گفت صلاح نیست می روشته بشه اینه خوب درقتانی چرا از کردن از دی از قلمانی من کتاب داشتن در منع تدوین حدیث ذرافت های کار رو متفق نشدن حتی عمر این بود چون عمر از کردن قبل از هم در مدینه هجرم کرد رو عمر به انو تجرب پیغمبر با بعده از, از مسلمان ها در به مدینه آمدن یکی جمع عمر و از همون عوائل هم با یهوژی ها بود. اصلاً ادری برادر ادری نیویش چون خودش درس عربی رو بلد بود یعنی کتابت در خط کوفی عمر با خط کوفی در مکی یاد گرفته در مدینه هم ادری و اصلا توباستو به ادری بود به خاطر رفعتش با یهود داشت از نزدیک صحابه‌ای بود که با یهود رفیق بود و آشنا بود به توان ادری دقیق می‌فرمه و لذا با فرنگی یهود آشنا بود با اصطلاحات یهود فرنگی یهود آشنا بود در دنیا یهوگیت میدونیم که تورات اصلی پنج سفر پنج کتابه اولی سفر پیدایش برستاتش در سفر پیدایش احکام کمه سفرهای بعدیش احکام بیشتره اما متنف در تورات سفر نظر من بیشتر از بقیه احکام داره نظرشو من خوندم تورات، اما اونقدر بقیه کتاب نصفر تنجیه کنم سفر دومش بیشتر احکام داره تدریجا توسط غربی ها در لغت خود به ظلا یهودی غربی میگفتن و اون طرفی هم می می گفتن که یاد میگرفت تلمیز میگفتن که تلمود هم از هم گرفته شده تلمیز عربی هم اصل یهودی داره یعنی شاگر. کسی که شاگردی میکنه یاد میگره متعلق دلت میفرمه در یهود تدریجا آمدن بی این فکر افتادن. که بیاریم احکام تورات رو جای جایی بریزیم با بعضی از هدافاتی که از اوسیه ها و اینها بود این کتاب بعدها این کتاب که نوشته شد اسمش رو گذاشتن الموسنه به فارسی ما یعنی الموسنه تورات الموسنه یه تکرار مکرر تورات در لفظه ادری مسنا رو مشنا میگفتن یا مشنا میگفتن وقتی مشنا رو به عربی تعریف میکردن مسنا میگفتن این مسنا همونیشه مسنا هست میگن ترداده ادری به عربی این ادری به عربی چقدر در دیده دو تا لفظ خود لغتشان اینقدر در نزلی کرد در مدینه لغت عربی متأثر به عبریده که اصطور یه اون مدینه اما مدینه متأثر این لفظی که اینها داشتن مشنا به لفظ عبری یا مشنا با, با تفریم به اصطلاح و عمرتون آشوه شروع متأثر یعنی شرح عجیبی داره این مشنا که تلمود و تایی خیلی داری را که کن تلمود بابی دارن که در ارام رویسی در تلموده بروشدینی که در بیت المقدس بسه در فلسطین فیلی نوشته شده و این خیلی اولمایه رو کار کردن این اگر راست باشه الان یک آقای به من گفت که کلمون به فارسی که در, در اصلاعی را نتاب کردن خبران و پیار هستن نمیدن در اکتاب خودش رو پنجر شده اگر راست باشه پنجر و چار شده یه شرح مختصریت چون من در بعضی از کتبیش مرضوزه به یهوده دیدم که بعضی از مسخه کلمود دو میلیون و 500 ازا سخته بوده خیلی چیزه بخشناکیه زحمتی که بیدیم که داخل کلمود و شرقه میشناکشیدن عمر وقتی مسئله تدلین سنن مطرح شد چون از سروش مجموعه مشورتی داشت عمر هم سی نفر بودن از ماجین، پونزفت از, از انسا باییان مشورت که امی رو رو میدیم و از از ایش رو ببطر نه نمیسیم سنن حدیث نیست اشتباه نشه در اون زمان زمان ما حدیث اون زمان چون همه صحابه ساحب رو بودن ببطر مثلا بیریم سیم سنن وزوچیه سنن رکوع چیه سنن سلاس چیه سنن, سنن حد چیه تمام اینه امایی که در قرآن اصولش آمده یا تیخنبر سنن درش داشتن سنن بیت سنن ات امه سنن تیخنبر رو, رو منظم بکنی. من اون معلولی منبر گفت این این آمون منزل کردن ولیکن من میبینم که اگر نوشته بشه مشنا تا مشنا اهل کتا خود این مثل از مسلمه توراک میشه یعنی yani شما باید یک مسلمه قرآن بنیسید مشنا چه روشن چی؟ این اون تفکری که آشنا داشت با اصطلاحات یهو ولی اصطلاحاتیه بود ولی اصطلاحاتیه حالا ما حالا بعد از اتفاقی اسم می‌بریم بعد از سونی اصلا مزخرفی که آنها چی گفتن یک دنیوشن مشنا ایشان مسنا نه همش درسته ایشان دنیوشن مثنّا که مثنّا تعریف کرده می‌شنا دنیا عبری مسنا همون دنیا عبری تعریف شده مثل نیشابور این چنین همون لفظ عبری تح... لفظ تعریف شده اما مثنّا ترجمه می‌شه نه تعریفش. بشه به فالسی الان ما بگیم المسنه الان ما به فالسی بیم المسنه نگیم المسنه اگر با من به فالسی انوزه خود رو کنم بیم المسنه پس در حقیقت اونا یک المسنه یه سورات نوشنن روشن گفت شما اگر بین سنان پیغمبری جمع بکنید یک المسنه رو قرآن نیشه واید یک المسنه ی قرآن نوشته بشه این یک مطلب این چند تا مطلب شو چهار تا دیگر مطلبی بود از زمان عمر قبلن مطلب بود زمان قبلن بود این یواشاش مطلب شد اون روایت دیگری بود خیلی از این قصه ابو سعید حدوی که ساده محروفه میگه که مطلبن من کتب ان غیر قرآن فریم برو مطلب دیگری که به وقت تدویر عمر نداره از این مالی که از صحابه است رفتی به تدبیر سیاسی نست اون حکمی که گفت سنن و این تدبیر سیاسی بود حکومتی بود نظر شخص خریبه بود بقدر او اما این حدیث بود است فقط این حدیث روی که ابو سعید و خودوی این مختلف اون بود این مختلف اون فیلم. از همون همزه صحابه در مقابل بله سعید سید خدری عبدالله به سر بود می گوه من از سال هشتون دقیقا عبدالله ماه رمزان سال هشتون نیجی شوقم به نوشتن سران بیاندم اون باشم 15 سالو خورده بود بین 15 تا 16 ساله پسر امراهات اول از این هم شاغت همیز مروری که آه این خیلی شده تاریخی لطیقی داری که اون شده سوی به اوات اوجر میکنه خیلی توج به لطی میکنه. دقت چی شد؟ بد الله می گفت مندر از الله کردم من دارم می بینمقیق روشونه. اوسب با ها مخال کرد بشر اخوانی میشه خلله میشه سخت میکنه اصلسلام میکنه که از پیغمبر خود این بدله میگه پیغمبر فرمون نقب تو فرد لذیب حسنی به حق لا یک من آهانا اشاره بده آنو بارد لا یک الا الحق اشکال بی خود میگه اینا گر این بشر حالات مختلف داره نه من در تمام حالات من حق فقط حق بزرانم جانه میشه پس معنوم شد تا میخواد چیز اگر این از اختلاف بین صحابه مطرح شد البته ظاهرن دستگاه خلافت بیشتر رو خط عبوی سعید خود می کارگرد این خط مورد ترویی چه خوالگیره که نه به غمبر رو بلا بکتو من کتبه انده غیر قرآن طریقه بگم اصلا به غمبر دستگاه بود باشت پاک بگم این مذبه پنجم تا یک درس راجع به سرن شد این چارو بود بر از شما فرامیشید خب یک بحث واجه به کتابتن علی دستاه به طور کلی تمایلشون نفس کتاباشون و هم نوشته عبد مشهور نشد سه نوشته عبدالله حدود گزارش حدیث بودیشون نوشته بود اگر عبد حدود 15 سال نم بوده عمرش نوشته 17 سال رو پیامبر کشت کرده دو سال ماه رمضان سال هشتون تا ماه رمضان سال نهون تا ماه رمضان سال دهون تا رویان اول که ماه که پیغمبر خود شدن سال مثلا فرصه ماه این دقیقاً مقداره نوشتن یعنی عبدالله رو سر هم گذاشت از از صحیفتون صادقه احتمال میدن این که اهل بیت ما کتاب رو الجامع از الجامعه از صحیفتون جامعه دراسه صحیفه جمل که پیش دیدین جعفر جامعه اون در مقابل این صحیفه صادره عبد الله بن عمر اهل بیت اون گفتن که ما نیازی به این صحیفه صادره امیرالمؤمنین صحیفه صاد جامعه نمیرشیم که جایی احکام داره روشن شد یاد پس تا اینجا این شد که همین شو مطلب یهو شواش مثلا اواخر دوران عمر مخصوصا مثل ابو هره شون کردن به کسرت تحریض از رسول الله اونا با اینجا موزه گیری کرد که اینقدر حدیث نغ نکو، تو دروغ راست میاد. اینجا هم محل کناشه. ادعای صحابه مثل ابو هريره زیاد حدیث سر می کرد. دار اهل سنت نشه که پیغمبر شلاق می زد. گفت بیا که تعریف سنن. اینقدر چون ابو در چی یک سال و هفت ماه تو مدینه با پیغمبر بود. چون هم دیر به مدینه آمد بعد از اون عمرو و گفتن براش شده بود یه یک سال هم بعد از فیلم بیرون یک رئیس جمهوری بر دخترین جهان نبود تو مارینه مدت زمان ابو غربا فیلم از یک سال هم هست ما این و لذا امری گفت اینقدر تو می‌کنیم مدتی که این غلط حدیث رسول الله نامیده می‌کنیم کوچی نه همین از از که داری می‌گویم ما هم که برای رسول الله تو این را می‌گویم بعد من همیشه داشت جاز اصحاب صرفت هم بوده توی دم مزمسه یکی که که که یا خونش و نهایه شده خیلی وضعه در قضا همی داشته با حالا در خیلی خود داشته داشته داشته دنبال معایی و حالا الان که دماغم پس خوب دقت دفرمایید یه بحثم یواشاش این شد بحث صحابه دو موضع گرسن مثل موضع اولی یه در صحابه نمونه می کنم یه در صحابه زی باید اینجا هم اختراع که که اون موضوع ازمین من بخواد شما در جریان قرار دارم چون در نتائجی که میخواییم بگیریم برایشون خیلی آسان میشه که این نتایج چیه چه این نتائج پیش آمدیم بحث در وجه ده خلافیش آمد پس یه بحث دیگه نصیششون مثلا زمان آمد تحریف مثلا عبدالدادون زوبه به پدرشون که میگه پدرشون خوب تو که ع افرد شما در در مدین هست سفیه زبه به سر سفیه هست اصلا اینجا خونه زبه یعنی اینجا که از حضرت است هست و امولدنی. این در خونه بی کن بقیه در اول قبرستان نبوده شبه همچه بقیه اصولا زمین خالی بود مواس بود اما نصف زمین مدین مرتفع بود بقیه یعنی مرتفع بلند از باقی تبتمانا بود خار، خار، خار بود خار قرقر خار قرقرم به اصطلاح روزی ما خار نیست. بذاره صدرخت مثلا بوته خود یک به اصطلاح دربی از اصطلاح کشاورزی درختی میشه یک ند میشه. مثل یه که ما تو این خارای تو بیام نیست. حالا قرقر گفتن چون چه زیاد بود تو این تپه بشودن بقیه قرقر. تپه اصطلاحاً قرقر خار. اون که اینجا ساختن. اول. اصلا خونه ساختند قبرستان نبود یه باشه برنا قبرستان مسلمان ها شد میدیون به خود زبه زبه خونهش همین چیز کردن قبر امولبنی میدیدین سر این خونه زبه بود لذا مادرش چه پاسی میکنه جبه خونهش درخ میکنن اصلا صحیحه که مادرش بود مادرش جبه خونهش درخ میکنن اینجایی که شما قبلا رحمه هر بینونه خونه عقیل بود برادر عمیر مؤمنی بل ازا این که متعجب میشه مثلا شاه قا امام یا به به ازا این زیر زمین عمیق بود در این زیر زمین این دفن میکردن این اون وقت در ورثه این قسمت بالاش اولین کسی که دفن شد عثمان بن مظعون بود بعد فعلا همون که لغدخور بود شما مرداتون هاتون دوباره ایشون اصلش قبرستان شو قبرستانش از عثمان بن مظعونه نمی‌خوام اینو یاد بگیرم تمام مورد درختاً معنی نمی‌سرم اگه درختا نمی‌کرده این چی میشه یه موردیه که تو بیاو درختا بگن بله خارج دغین اخر دغین یک باقی بود باغ کوچیک اسم ما به فارسی باغچه در لغت عربی اگر درخکاری بود بدون دیوار بود بهش میگفتن بوستان با دیوار بود شما میگی باغ بهش میسن حائط کامل او حائطو باغی مجموعه است که توش درخت باشه و دیوار داشته باشه. اگر همین باغ کوچک بود بهش میگفتن هوش، هش این لحظه ادری بود. هش هش یعنی باغچه. زنی بود یهودی این باغچه مال اون بود، منو به هش کول کرد. چون دیوار داشت، چون اون زمان تو که اونها سرکوب نبود، بلکه یهودی‌ها هم اونجا مثلا طایرا میکردن، اون که بعضی نظاره ها اونجا درخت می بکنن بالا اساسش باغچه ای بود. هشت یعنی باقشه باقشه و لفظ ابریز به عربی تعریف میکنن هر سی باقشه هر سی این باقشه آسمن همون لفظه آسمن چون خارج بقیه بود خ... بقیه که تمام میشد این باقشه کوچیکی بود مال خودت چون بعد از این بقیه میگن که برای غورزه الان دستن غورزه دیگه الان تو مدینه به غورزه شما از بقیع وقتی این با اخر چهار راه که از میشین به غورزه در اساس بن غورزه است یادتون میجوام مدینه رو به شما ارزه گارا اصولاً مدینه مثل شهر قم نبود اون توکیه حالت شهری تیک بود مثلا یه مجموعه یه مجموعه مثلا بین بقی و بین طبانه هست که الان صاحب شده، این دیار به تو خانه خانه بود این بنیه حاشب اینجا بوده مغزم بنیه حاشب اینجا بوده بالاسی که اینجا خونه ابو و انساظی بود بعدها مغزم بنیه حاشب این منطقه بودن مثلا حسین بنی سار یک منطقه بود. بزید خودزه یک منطقه بود که از وقت کارشون برداره و شرق تاریخ داریم و هر حال خوب دقت این بفرمایی مثلا میگه عمر به ابو هریره میگه بله من همه شوخی کردم کار من شامل بس چی این چیزه فرض و تو الهاک سفر به دغی چون بود که عمر تو بغی رضا الله علیه السلامی بود علیه قرنی چه بود یعنی محل تجارتش بود گفت تو اونجا مسئول خرید و فروش بودی تو دنبال کلمات حدیث از رسول الله نه خود ایشون نه نه الهاک سفر سفر سلامت چون لحظه با عاملان درس سفر دست می‌دادن و سفر یعنی به تو مشکول ها تیزه کنو شد و لذا جناب آهی عبدالعادم زوهر به پدر میگه بیگه پدر جمال کلاسا حضرت سناسوی نه این همه حدیث نه که قفص همه بر از مکته ها زوهر روز در مکه ایمان امرده در مکه ایمان امرده مدت در مدینه بوده جمعه بوده میگه که من چینا پینامه من گفت من کده برای زوهر متحمدن رو نرور نمی کده در زبایی دویگه پهنامان منصده به علیه فلسطور بر محردون. یعنی دروغ بر پهنامان ولو متعمد نباشی ولو اشتباهی. <تصفيق> من بلی که اشتباه هم دروغ نگر تحریص می کنیم پس این محرده ایچ مذهاب شیشون بود. این زمینه ها رو در تکت تا من اینشالله مذهاب که می توانیم. برسیم برسید. در دیگه ایچی چرا بحث خبر واحد این مقدار مشکل درست کرد. شخصا مطلب درزن توم باشید تا گوشش الله